اشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اله و وخاتم النبيين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الله في العربين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قيام يوم الدين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبدالله صلی الله علی کا یا ابا عبد الله تدفی شکوه مولانا و مقتدا صاحب صاحبلسر و زمان و جهت خوشنودی حضرتشون و تعجیل فرجشون صلواتی تقدیم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد موضوع ایرایز بحث امام شناسی بود با سبقه غیر رائج در کتب کلامی و خلاصتاً عرض شد که در کتب اعتقادی به بخشی از ویژگی های امامت و امام معصوم علیه السلام پرداخته میشه به ضرورت بحث هایی که دارند به تناسوب بحث که دارند و بخشی میمونه و با توجه به اینکه هم در بحث امامشناسی هم در بحث پیانبرشناسی و هم حتی در بحث خداشناسی این نوع معرفت ها بسیار مهم و ضروریه و ازش بحث نمیشه در سه هیته اقل که فراتر از این سه هیته هست که حتی قرآن هم همینجوره، حتی دین همین نگاه رو داره، یعنی یک نگاه فراتر از نگاه رایج کتب اعتقادی، به نحوه خاص روایت آقا علی ابن موسی الرضا علیه الاوف التحیته و, و ثنا در این موضوع باید مد نظر قرار بگیره چون عرض کردیم که شروع روایت با مباحث رایج کلامیه در بحث امامت ولی در ادامه روایت حضرت امامت رو میبرند در یک وادی که اصلاً انسان ها در اونوادی نمیتونن امام شناس باشند و باید خدا بیاد رو میدان به اختیار ناس و به عقل ناس نیست این نتیجه رو میگیرند یعنی خلاصه روایت آقا ابن موسی موسیقی صلات و سلام اینه که مردمی که نشستین در مسجد مر روز جمعه دارین درباره امامت و رهبری جامعه صحبت میکنین هر گروهی داره نظری میده من علی ابن موسر رضای امام معصوم بهتون بگم که امامت فراتر از این چیزایی که شما دارید فکر میکنید یعنی شما با اون یه جامعه مجره احکام و حافظ قوانین شهر و خیال میکنید یه انسانی از بین انسانها به هر حالا خصوصیت خاص و میتونه این مقام رو احتدار بشه به اون یک منصبی که همه مردم میتونن بهش دست پیدا کنند و این منصب یه منصب آسمانی و ماورایی نیست نه یه منصبی ویژه هست ولی زمینی رضا زمینی ها هم میتونن درش نظر بدن و انتخاب کنن نه من علی ابن موسر بهتون بگم امامت غیر از اینکه زمام دین رو عهدهدار میشه امام معصوم و غیر از اینکه حافظ شرعه و غیر از اینکه موجی احکامه و حلال حرام بیان میکنه امام معصوم خورشیدیه که المجللته بنورها للعالم خورشید امام معصوم نور میتابه شما کجای این رو در موضع ما معصوم فهمیدید و متوجه شدید؟ اما باید نور الله باشه. حالا با مکملش در روایتی دیگه، روایتی دیگه، اما اما باید هم نور باشه، هم باید منور باشه. و هم والله یونورون قلوب المؤمنی. کجا فکر کردین شما میتونین با انتخاب خودتون چین شخصی رو بشمسید؟ اصلا خلاصه این روایت شریف اینه که امامت، یک عمری خیلی فراتر از تصور بشر و خیلی آسمانی. درسته؟ امام یک شخص بشره، بشر معمولی، ولی جنبه آسمانی بودنش و عرشی بودن درش کاملا محرزه. و چون این گونه هست، نتیجه نهایی آن رو بعد از اینکه اوصاف ماورایی رو بیان میکنن، که ما واحد و دهره لا یا دانیه احد اصلا کسی نمیتونه به ساحت مقدس امام و محسوس راه پیدا کنه و کسی رو یارای اون نیست که در این آسمان پرواز کنه شما جوری دارید؟ در برش بحث میکنید و میخواد نظر بدید و انتخابش کنید و تشکیزش بدید خب پس این دوید کاملا با بحث مرتبطه که امامت جایگاهی بسیار متعالی و بسیار بالا و بسیار آسمانی و امام معصوم علیه السلام شخصش رو هیچ بشری نمیتونه با این اوصاف تشخیص بده. باید خالق این شخص آسمانی بیاد و او رو معرفی کنه. امر آسمانی رو باید آسمانی ها بیان کنن. زمینی ها نمیتونن خب این نتیجه همون بحثیه که ما داریم برزن که امامت به سبک رائجه در کتب اعتقادی وافی و کافی نیست. لازم است ولی کافی نیست. اون ضرورت بحث خودش رو داره ولی اصلا نمیخوان فقط امام رو به عنوان یک فرمان روای واجب الاطاعت معرفی کنن فقط این هست میخوان می همون فرمان روای واجب الاطاعت بر جمعی کائنات این نم رزنه من رزه کنم جز به شخصه هاش باشه نفرحول فرح کن نفرزنه حزن نکن ما اینقدر به شما ها وابسته ایم ما وابسته باشیم به عهدویت که تحجیبی نداره. اهل بدان نشونده که ما با شما وابستهیم. دل شما به قم بنشینه ما به قم بنشین. شما مریض بشین ما بیمار بشین با بیمانی شما. خب این شاخصه در امامت هیچ وقت در کتب رایج اعتقادی مورد بحث قرار نمیدیره. ولی این معرفتال امام قطعا. و اینه که معموم های این امام و امت این امام رو به شکلی می‌سازه که ازشون فدایی در میاد، فدایی امام محصول، مثل اصحاب اهل بید، درجه کایی که در زمان رسول خدا، در زمان امیران این امام هستند، امام هستند، این سایر اهل بید، حواریون یا تعاوید دیگه، اینا از توش شهر میان. به قدری محو این انوار مقدسی میشن. کجا این درس رو یاد می گیرن؟ تو زیارت جامعه کبیره تو رواهت امام رضا زیارت جامعه کبیره مباحثش خیلی دیاش اصلا بهش اشاره نمیشه در کتب به اعتقادی چون رسالتشون این نیست نه اینکه که اشکال کنیم نه چون رسالت به حیطه کارشون نیست پس کجا اینو باید بحث بشه حتما یه نفر بعد فکر این باشه که من برم شهر زیارت جامعه بخونم خب اون شاید خیلی یا به ذهنشون نرسه که زیارت جامعه رو به چشم یک زیارتی که باید بخونن نگاه کنن دنبال این محتوانه باشن که کلاس شناسی در این زیارت جامعه هست به عنوان شناسی به عنوان معرفتال امام باید بهش توجه بشه در کتب کلامی حتی خدا به عنوان محبوب معرفی نمیشه ولی در روایات خدا هم به عنوان محبوب معرفش هم به عنوان محب هم محبوب قلن کنتم تحبون الله فتح به اونی والذین آمانو اشد و الله هم محبه هم محبه تتحب با علیه حتی توی همین شب هم میخونید دیگه اصلا خودش میاد برای ما محبوب کنه میاد علاقه به خودش رو در دل ما اینجا هست که ما باید بریم دنبال این محبوب. او میاد به سراغ ما. خدا اینجوره نماننده خودم همینجوره. امام معصوم همونجوری که خدا ارحم و راه امام معصوم هم انا لعرحم و بکن من کن کن. یه مرتبه اون امام واجبالعطه اون فرمان روای مطلق عالم هستی. یه مرتبه تبدیل میشه به یک رفیق شفیق. والد شفیق. غنیز رفیق و اخی شقیق این معرفت اگر نباشه در شیعه و محب هیچ وقت ازش چنان افراد ممتازی مثل سلمانو و مثل ابوذر و مقدار و امار و سایر هیچ وقت اینا هیچ وقت آدم های تولید نمیشن که هزار مرتبه اگه منو بکشنم دوباره زنده بشم باز هم میگم ابوالفضل من آماده فداکاریم. زینب خوابه ما بریم که بعد از شما بمونیم اصلا زندگی بعد از شما رو نمیخوام چنین افرادی در سایه چنین معرفتهایی به وجود میآییم یعنی امام شناسیه با تمام مظاهرش با تمام ویژگی‌هاش، هاش اون امامی که فقط حاکمه ولی درستترین حاکم و موفقترین حاکمه آدم هستی هم باشه هیچ وقت این جایگاه پیدانی میکنه که فدایی داشته باشه حاکمه من وظیفه همه انجام دمونو وظیفه همه انجام بده. اما من فداییش باشم من جوهل تو بهش بگم ضرورتی نداره وقتی محبوب میشه وقتی میفهمه بچه شیعه اون کسی که به عنوان امام محسوم معرفی شده کسیه که اصلا خدا اینی ما خلقت سما مبنیه ولا ارزن مدهیه فلا یدو له عجله کن به او یه مرتبه متوجه میشه وقتی سراغ این معرفت شناسی میره. متوجه میشه اصلا او تو در مخلوقات و او مخلوق اصلیله و بقیه همه تو میفهمه اصلا وجودش و مدیون ما معصومه. نه اینکه من اومدم توی جامعه دنبال پیشوا میگشتم پیشوامو پیدا کردم پیشوا معصومم انتخاب کردم که خطا نداشته باشه. وقتی ابلاغ میکنه، وقتی اجرا میکنه، دستورات خدا رو خطایی درش نباشه. اونم تازه اون اصطلاع رو در همون حد دایره احکام و ابلاغ احکام، اجرای احکام رو در همون دایره ثابت میکنه. اون عدله رو ارز میکنه. نه مدعه، مدعه همینه که حتی خیال گناه هم در خاطر مقدسشون عبور نمیکنه. اما دلیل های میتونه این ادعا رو ثابت کنه. اون دلیل های رایج و اینجوری یه نکته رو حالا امشب اشاره کنیم با اون مکمل بحث که ما خیال میکنیم همین بحث رو باید عقلی باشه اصلا اینجوری نیست حتی در بحث خدا شناسیش هم همینه وقتی ما پی بردیم خدایی هست خب اون خدا هم رو معرفی کنه دیگه بعد فهمیدیم خدایی هست بهالو من اینجوری هم من سیره من خدای اینجوریه یکی از سیره های من اینه که من و کدوم دلیل عقل ما می‌خواستیم بفهمیم خدا باید حلیم باشه؟ بگه من حلیمم، من انتظار مجازات درجا و پاداش درجا از من نداشته باشیم من سیرم این نیست، رو بشم این نیست آقا ما اینو با دلیل عقلی نمی‌تونیم، عدله اثبات خدا اینو ثابت نمی‌کرد، فقط علم و قدرت و نازم بودن و مثلا اینا رو حکمت رو ثابت می‌کرد اما عطوفت ثابت نمیکرد بله اون خدایی که اسمش میشه واجب الوجود توش عطوفت نخوابیده، توش رحمت نخوابیده. باید باشه موجودیه که باید باشه خب شما هم باید وابسته بود شما میتونین همیشه باشین تو اون استدلالای غلط اینجوریه دیگه شما میتونین ممکنون وجود باشی ولی همیشه هم باشی فقط وابسته ای نه همیشه هم بودی یک مطالب انحرافی. به اسم توحید و ولی رواید میگه خوب همون تو اون بحثا میگن ازالی فقط خداست تو بحثای بعدی بگونید اون ازالی رو برای ما, ما خود اون ارزدی میاد خود چه معرفه ما پی بودیم البنا تدل و علل بانی این اسطلاحی که روایت هم اومده خب ما فهمیدیم این عالم بناییه که بانی داره اینکه لم تکن سمکن تا وقد علم تا انکه لم تا کبون نفسک ولا که من هوه مثلو. خب فهمیدیم با بهترین استدلال اثبات خدا و حتی اثبات صفات خدا که لا کبونه که من اوام اصطلال که او شایم به خلافت اشیاء نیست که مثلشه فهمیدیم خب حالا دیگه بشنم خدا پرستی کنم اصلا از این مقدار استدلال این بحثای اینکه که خدا چجوری با گنه کار رفتار میکنه غفوره ستاره حلینه خداي بحانجوه، منتظر اینه که این حرکتی ببینی از ما، فوری تفضلش و رحمتش رو جاری کنید، اینا در نمیاد که بگیم خدا پس خودتو معرفی کن، امام معصوم، حالا تو بحث خودمون، امام من با دلیل عقلی، حالا بر فرض دیگه همین عدل رایج رو هیچ مناغشه ای نداشته باشیم، من با دلیل عقلی فرمدم شما ضرورت داره وجودت، شما باید باشی بعد از رسول خدا، بعد از پیامبر الهی، شما باید باشی، حافظ میخواد، مجری میخواد، مبین میخواد، سنت خدا و پیامبر، قرآن، یه قرآن ناطق میخواد مفسرش باشه، خب اینا رو فهمیدیم مثلا ما تونستیم، اینا رو استخراج کنیم، ولی دیگه این امام باید واحد و دهره باشه در چیزهایی، مسیح که او وقتی میخوابه بعد چشمش بخوابه ولی قلبش نخوابه اینو تو روایت با اون ویژگی امام اومده لا ینام قلبو باید قلبش بیدار باشه قلبش به خواب نمیره مثلا لایسوی روح القدس داره الواح پنج گانه است تو یک روح اضافی داره که در بقیه اشخاص نیست در انبیا و عهد بیته اینا رو خودش باید بگه، خودش باید خودشو معرفی کنه ضرورتی نه تمام بحث‌های امامت رو ما بگی با دلیل عقلی باید نه ما هنوز سب کنید هنوز هیچی از امام نپرسید هیچ روایتی نه روید ما هنوز داریم تو بحث اثبات امام بحث کنیم. شما همینقدر که فهمیدی در قدیر امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان وسیم معرفی شده باید پای زانو برسنی پای منبرش و سلونی قبلا رو بشنی و پرسشگر باشی بگیر خب حالا یادم بده پیامبر معرفیت کرد تموم شد آقا امامت به نص همین فرمایش امام رزارستم که نتیجهی که میخوام بگم پس امامت باید به نصر الهی باشه خب وقتی فهمیدیم به نصر الهیه. حالا خود امام امام اصلا بیاد بگیر من چجوری هستم من چجوری شدم. اصلا، از خلقتش صحبت کنه از آفرانشان. با عقل خودمون میتونستیم بفرمین نور احد به چه جوری خلق شده مثلا از نور خلق شدن تینتشون چه بوده در کدوم عالم بودن بعدن چیکار میکردن نعلم الملائکه اینور با عقل میتونستیم یارحکم الله اینا چیزیه که خود امام با خودش معرفی کنه و این معرفیا اتفاق افتاده در روایات ما در ذیل آیات شریفه اینا این بیانات اومده و ما نشستیم تو اون مباحث خودمونو محصور کردیم حد امام رو اونقدر دونستیم که اون امام کسیه که بدونه بله امام شناسی کسیه که بدونه در قدیر دست کی بالا رفته خب تموم شد دیگه اینجا امام شناسی نه شروع شد تمام نشد تازه شروع شد. حالا که فهمیدی بر امامت بگه که من علم من من اندهو علم الکتاب علم من علمی متفاوت با تمام آلم های دنیا علم من یه قطرش تخت بلغیس رو میتونه جا جا کنه فرسنگ ها در کمتر از پرگزدنی این قطره از علم منه اینو چجوری میخواست عقل بفهمه چجوری میخواست بشر بفهمه بعد از اینکه زانو زدیم در محضر امام معصوم امام شناسی رو از خود امام باید یاد بگیریم بعد خود امام درس امام شناسی بگذاره عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه خوب میدونه داره چه کار میکنه که اومده پیش امام هادی علیه السلام می‌خوام اعرج که دینی خب دینه دینت چیه خدا هر استیمو تایید کنید امضا کنید پیامبر شناسیمو امضا کنید امامتامو امضا کنید بعد چیزایی دیگه هست اصل کاریش توحیدشه اومده به امضای امام معصوم برسون یعنی ما بعد از اینکه فهمیدیم خدایی هست و رسولی هست و امامی هست تازه برای همون خداشناسی باید زانو بزنیم پیش ما. بدارف الله بناو بد الله برای امام شناسی هم همین جوره فرقی نمیکنه برای قرآن شناسی هم باید قرآن باید قران معرفی کنه قرآن صامت باید قرآن ناتخ تفسیر کنه تحلیل کنه شایله نزولش رو بگه آم خاصش رو بگه ناسخ و منسوخش رو بگه اصلا تا او حرف نزد درباره قرآن صامت قرآن صامت حجت نمیشه البته ارزش کردیم در جای خودش که بین قرآن ناطق و قران صامت تعامل هر دو مکمل همدیگه گویی هم قرآن باید به داده یک روایت برسه که حجیت روایتو ثابت کنه اگر ما روایت با قرآن سنجیم در حجیت روایت کوتاهی کردیم اون با قرآن سنجیده نمی‌شه قرآن از او وام میگیره. تعامل بینشون مبادله پایاپایه قرآن به حدیث میده حدیث به قرآن میده و هر دو کلام نورن. کلام وحی خب. امام عصمت با قرآن صحبت کنه قرآنی که ما باز اون بحث داریم متن دینه. کتاب دینی مسلمانان چیه قرآن؟ احکام توشه؟ تاریخ توشه؟ سرسنفی نه؟ سرسنفی مثلا رو بخون، سرسن تعاویر مختلفه در بخونه بخشیش فضایل ماست بخشیش غضایل دشمنان ماست درباره دشمنان ماست خب باید مفصل قرآن بید از جایگاه قرآن صحبت کنه این قرآن میتونه شفا باشه. اون از القرآن ما و شفا و رحمتان للمومنین. این دیگه اونجاها ها بحث نمیشه. شفا بودن قرآن. داره شفا بودن حرم ها و محضر امام محصوم و دست مبارک امام محصوم. محضر. که شفاست وقتی به سرها کشیده میشه. و رو بارور میکنه دست مبارک امام زبان. انشاءالله عجلالله. تعالی فراجه و شریف که این صحنه ها رو آلم تماشا کنه که امام محسوم خودش شما عرفی کنه. خدا رو معرفی کنه. پیامبر رو معرفی کنه. پیامبر امامش شما معرفی کنه. خدا رو معرفی کنه. خدا پیامبرش شما معرفی کنه. این نکل علا خلق عظیم. لو لاک لما خلق تا لف خدا بگید جایگاه رسولمون جایگاه بشری عادی نگاه نکنید. اگه اون نبود اصلا آلم و قدمروز پروژهش رو اصلا کرید اصلا خلقت رو شروع وقتی که یه بچه میفهمه می تو اصلا توفیلی امیر المومنی خرب شده. توفیلی عهده به این شده. خیلی دینش متفاوت میشه به این امام. وقتی میفهمه که امیر المومنی قسمون جنته و ناره. اینو تو کدوم دلیل عقلی قابل اثباته؟ اینوال امام شناسی هست. اینی که امام معصوم قسیم الجنت و ناره این قسیم الجنت و ناره اینی که حضرت سلام محریه شون بهشت و جهنمه اختیاردار محشر هستند، اینا باید توسط خود معصوم بیان بشه صحیفه حضرت زهره کی میفهمه چیه و چه معرفه دادش هست حلوم علمه چه سنخیه؟ بخشش صحفیه بخشش قیاده استخوافیه. خب، اینار خودشون باید بگن کتاب جفر داریم، کتاب مثلا چی داریم ما، چه مسافری داریم. علم ما چه شکلیه، حدودش، وسعتش چقدر، کیفیتش چجوریه. خود اهل البيت باید درباره خودشون صلاحت کنند، سلامت کنند. و این یک ضرورته که ما بحثای توحیدی رو از محیط کتب عقاید بکشونیم حتی به متن دعای ابو همزه چون اونجا خدا داره معرفی میشه از یک زابیه قاسی ستاریت ستاریت خدا خیلی چیزا رو روشن میکنه حلیم بودن خدا خیلی چیزا رو روشن میکنه حالا این نمیخوام بحثا رو... بحثای توحیدی که حالا جدوانی داره محسنش انجام میشه مختلط کنم و ممزوش کنم ولی میخوام فقط دوستانی که اینجا تشریدان خب تو اون جلسه خیلی نیستن که بدونیم یک خطایی داره صورت میگیره یک کمکاری داره تعبیر کنیم یک کمکاری داره صورت میگه در معرفت الله در معرفت رسول و در معرفت الحجه. وقتی میگیم اللهم عرفنی یکی یکی اینا رو میخوایم گدایی میکنیم خب باید زانو بزنیم خدا میگه خب بخشش انجام داری. اللهم عرفنی میخواد بروز زیاد جامعه کبیره. عرفنی همون جتک رو اونجا درست گذاشتیم براتون. برو در محضر امام رزا علیه السلام. اونجا باز ایروت دیگه. غیر زندویت دیگه. منون اشاره کردیم. امام باید عبدالناس باشه، اعلمان ناس باشه،, اعلم باشه، اشجهان ناس باشه، اصخن ناس باشه، ازهدان ناس باشه. یه مجموعه رو با حضرت معرفیمون با امام شاخصه امو. خب اینا رو اگر امام محسوم بیان نمیکرد ما نمیتونستیم اینا رو جازمانه بیانیم با امام ویژگی های امام محسوم. مثلا چرا نباید اجملان ناس باشه؟ نیومده ایمده در روایتی که. با که اگه می اومد هیچ چیزی هم نداشت. خدا می این کارو بکنه. اینم یه علامت باشه. ولی خدا نخواسته. نخواسته این کار بکنه. حکمتهایی داشته که نخواسته. ولی اولو اعبدان ناس و اشجع و اسخن ناس و از هدان ناس چرا؟ باید امام اینجوری باشه. کسی که مدعی امامته اگه زاهدتر از اوت عالم وجود داشته باشه اون امتونه امام باشه. مشیخه امام نداره خب این مباحث حالا نمونه‌هاش ارزش دار می‌کنه اینکه امام باید ولد مختونان باشه این شاخصه است اینی که امام باید با توسط زمین بلیده بشه نباید خب این یک موجود ارشی باید خصوصیات عرشی باشه تا مردم احساس کنن او باید یه خلفی خلفه ای باشه از پشت سرشم ببینید اصلا دیدن که چی. او باید بریم سر روایت دیگه عالم امکانش امکان کفل قطع جو وزدن مشتش باشه بعد میدیم چقدر متعالی مقام امامت و امام المعصوم دیگه اون وقت مخ... بعد یه درمیان که بله یه دانشاندان محترم نظاری علمان ابرار و اون یک ستمیه در بحث امام شناسی که به زبان ساده میشه اهل به دانشمندان با تقوید دانشمندان محترم و کار. این حد امام محسومه امامی که معلم ملایکش در عرش ندور و حول عرش رحمان روایت نوحوسین علیه السلام به حبیب و برمزار شرای صدوق قزمانانه ای شیئن کنتم قبل ای خلق الله آدم الا نبینا و, و علی علیه چی بودید شما میدونم بودید قبلا قبل از فرود در این عالم خاکی و در نسل آدم قرار گرفتن اینا رو بلده میگه ای شیئن کنتم چی بودید شما ماهیت شما بزرگواره چی بود کن اشباح نوره ما نوری های یعنی من میخوام ببینیم قبل از اینکه در صلب آدم در عالم بشریت زمینی بیای کنه اشباح نور ندور حول عرش الرحمن ما در توافع عرش خدا ببین شبه های نوریم کارتون چی بود؟ نعلم الملائکه ات تسبیه و تحلیل و تحلیل چقدر نگاه به امام رو متفاوت میکنیم اسکی کسی که خیال میکنه امام معصوم مثلا یک سری علوم رو نعوذ بالله اصلا نمیدونه و لازم نیست بدونه. اون علوم مثلا و حضرت فرمود، اگه قرار باشه من زبان پرندگان رو نفهمم پس فرق من خدا با تو چیه؟ یعنی باید بفهمید ما با شما متفاوتیم. در یک کلمه رایج و مشهور. بعد بفهمید که لایقاس و بنا احد خب انسان لایقاس و بنا احد نه اینکه بین مردم افضل ناسه نه لایقاس به بهم احده یعنی اصلا آسمانی متفاوته با اینکه بشرون مثل کمه ولی یوهایلیه دو جنبه ایه مثل مادرشون اممالایمتن قبا این نجبا دو تا جنبه داره جنبه خاکی جنبه زمینی و فرشی و جنبه ارشی و آسمانی و نوری و جنس نور خود خب درست نور هم مادده است به نگاه دقیق نور احرابیت هم مادده است اصلا نور مادده است و خدا جنس نور نیست خدا متعالی از نور بودن آره اشاره هم بکنم بد نیست نور الله و سید الله بعضی از اشاره کردیم بحثشو تعبیر نور الله هیچ فرقی با تعبیری از سنخید الله و اینالله و الله نداره چطور اونجا احنفه هم فعالی میگن خدا که گوش نداره پس این تعبیر تعبیریه خدا که دست نداره پس این تعبیر تعبیریه کنایه از قدرت خداست و حالا در آیه شریفه ید الله فوق ایدهیم یعنی اتحاد ید خدا با ید ولی خدا یعنی تو با او دست دادی با خدا دست دادی. با او بیعت کردی با خدا بیعت کردی با او بیعت وشکنی با خدا بیعت شکستی این دست ید الله فوق ایدهیم اینلذی نیبا یعونکا انما یبا الله. لا خیال نکنید دست شما پیامبر رو دستشون انگام بیعت ید الله فوق ایدیهم. یعنی دست نماینده خدا به منظره دست خداست خدا که دست نداره، چشم نداره ولی همونجور که میگیم علم خدا به مسموعات میشه تعبیلی تعبیل الله یعنی خدا میشنوه ولی گوشم نداره میبینه ولی چشمم نداره یعنی علم به مسموعات، علم به نور الله هم همینه یه خطایی که برای خیلی را پیش میاد خیال میکنن نور الله دیگه تعبیرش تعبیری نیست. یک نوریه خدا که بعضی ها که به لغا الله میرسن یعنی این نور رو میگینن. و یک شواهد از روایت پیدا میکنه که مثلا پیانبر در اون روایتی که رجلا و فیخ به شکل یک جوانه سی ساله مثلا نور اخسر دیدن نور احمر دیدن رنگ های با... که انگار خدا یه نور رنگیه رنگا و هر جلوهش رنگیه اصلا خدا جنس نور هم نیست نور الله هم مثل ید الله یک تعبیر تعبیلیه تعبیرش کجاست الله نور و سماواته و الازل بیان هادند اهل سما و هادند اهل ازل امام معصوم باید اینا رو بفرمد که اعتقادات تشریح بشه که خیال از جنس نوره بعد لایجی بیاد مکاشفه و بیا رفتم در نعراج و چه نوری بود و من رفتم قرقه در اون نور شدم من او شدم و اون من او اصلا فامی شدم, من شدم دوباره برگشتم چی خواب دیدی خیالاتی شدی این حرفا کدومه بعد خدا خالق و نور هست ممکن در, در یک سحنه هم برای یک کسی خدا نور آفرینی کنه نور آفرینی کنه. نه اینکه نور خودش رو نشونه کسی بده. نور خلق کنه. مثل کلامه. خدا که حرف نمیزنه. ولی کلام خلق میکنه. کلام مخلوقه. پس نور الله مثل الله تعبیر تعبیلیه. تعبیلش هم روشنه دیگه هزت بیان کردن. چطور نور مسیر رو روشن میکنه اگه نور نباشه آدم؟ مسیر رو گم میکنه الله نور و سمامات هست. تو آسانون زمان خداست که روشنگری میکنه مسیر ادایت و مسیر زلالت رو تبیین میکنه خب این که قطعا خدا هادیه. از ما و صفات الهیه خدا حادیست تهدی منتشا. تشاه یهدی من, تشا. من و یا زلو و تا زلو منتشا تشاه من بله هدایتگری کار خداست و کسی رو که خدا محروم کنه از هدایت و نخواد میشه گمراه. پس هدایت و گمراهی فعل خداست. اما الله از جنس نور باشه نیست. الله نور و هست. همون جمعه هدایت کرده. هادی آسمانیان و هادی زمینیان. روشنگر مسیح برای آسمانی ها و برای زمینی ها خداست. الله نور و سماوات هست. خب این معرفت رو ادامه بحثم و کنم و جمع کنم دیگه کم کم بحثم. اینی که معرفت الامام در زیارت جامعه کبیره در روایت امام رضا در هر روایتی که علامات الامام بیان شد. در هر روایتی که حالا نه فقط علامات. در هر روایتی که فضائل امام معصوم بیان شده. ما کم نداریم رویت های معتبری که به بیان فضائل با اون فضائل همش میشه امام شناسی نه اینکه اون بحث فضائل یه بحثیه مثلا هر وقت میخوام حال کنیم بریم فضائل رو بخونیم نه اصلا امام شناسیه باید بدونیم که امام کسیه که سن ریزه در دستش تصویر میکنه امام کسیه که اگر دست مبارکشو بر سر کسی بکشه رو، عقل ها رو بارور میکنه دست مبارکه حضرت بقیه اطلاعی در زمان. اشاره کنند زمین گنج هاشو بیرون با پای مبارک از اگه بخوام با رجدم اشاره کنم زمین کنوز خودش رو تا فرمید در جای دیگه اینجا که زمین گنج های زمین مال ماست اگه بخوام با پام اشاره کنم یه مرتبه دید شمش های طلا پیدا شد دادن دستش تماشا کن این تمام عالم در اختیار ماست گنج های عالم در اختیار ماست ما سروتمند ترین سروتمندانی مثلا قابل مقایسه نیست باید ثروتی ثروت اهلوید ما اینجوری هستیم و فوری هاشیه که رابی داره که و نگاهی که شما اینجوری هستین و شیعتکم محتاجون آتیتم ما آتیتم و شیعتکم محتاجون خب باید بابا ما هستیم ما تمام گنج ها و تله هایی که چشم شما خیلی میکنه زیر پای ماست فقط منتظر اشاره پای ماست منتظر اشاره دست ماست ولی اینالله سیج معالنا ولی شیعتنا از دنیا آخره. خدا یه جا میخواد براتون جمع کنه. عجله نکنی. اینا هست. ما هم خودمون داریم سب میکنیم. اینا در اختیار ما هست. شما فکر نکنید که حالا چون امامتون همچین گنجین هایی زیر پای مبارکش هست. باید همتون برید صف بکشین صف شمشه طلا واید این تا حضرت یکی یکی شهریه بدن بهتون. نه همچین خبری نیست. اینداله سیجمه و لنا ولی شیعتنا. قرارمون با خدایی نیست. شیعانمون همینجور. دنیا و آخرتمونو خدا یه جا جمع میکنه برای اون. خب امام مرسوم باید تو این جایگاه معرفی بشه برای شیعه. اگه به اون جایگاه اکتفا بشه معرفت الامام خیلی از حریم مقدسش فاصله میگیره. و امام اصلا جایگاه پیدا نمیکنه که فدایی پرور باشه و اصحابش رو تربیت کنه و تعلیم کنه و تزکیه کنه و برای اینکه شیعه ای پرورش پیدا کنه و رشد کنه در معصومیت امام محصول باید امام شناسی با این سابقه و با این شکل باید در مدرس ها و در کتب در مناقه مورد انایت قرار بگیریم. امام شناسی مظلومه. چون امام شناسی رو با تمام زبایاش نمیبینیم. کما اینکه که خدا شناسی رو با برژه زبایاش میبینیم. امام رضا به دادمون رسیدند. وگر نه ما شاید جسارت میدونستیم. واقعش من خودم اگر امام رضا علیه السلام نفرم بود که الامام الانیس و رفیق آقا درست نیست به امام محسوم آدم بگه رفیق امام محسوم نه خیال نکن همون ولی امری که باید اطاعتشو بدون چون و چرا داشته باشی همون ولی امر واجب الاطاعت همون فرمان روای عالم هستی همون کسی که تمام و رو هیوانات دریا و آسمان و همه تحت فرمان او هستن او اینجوری هم هست الانیس و رفیقه خیلی دوستتون داره شماها دوست دارین که اصلا تکلیف دل هاتونه. فریضه قلبیه شماست فریضه قلبیه او شماها رو دوست داره اینو بدونید او شماها رو دوست داره نه که شماها رو دوست داره والله انا ارحم بكم منكم و بکم منکم و انفسکم لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد این مهربان تر از پدر و مادرم حسین السلام علیکم یا ذللا وعلى الأرواح التي هل كمني سلام الله الأبداء ما بغيته وبغي الليل والنهار ولا زيورتكم السلام على صالح وعلى علي ابن صالح Sure. So علال عند این خیلی سخته زروی سینه من شم خدا را برخی خواهرم می کند این صحنه تماشا را دختری آمده از اهل حرم در کیمان من تا که قدم دخترم اینجا برخیحق حق داشت زینب کبرا یه عمری کنار حسینش بوده حالا چند ساعت از حسینش فاصله گره بوده. چند ساعت خبری نیست نیومده دم خیمه ها لحظاتی خودشو با عجله به سو من بر تنی که نیست سرش گریه میکنم از نیزه آمده خبرش گریه می کنم بر دختری که دامن من را گرفت گیرت سراغ از پدرم گریه کنم دورش شلوغ بود سرش تا جدا نبود سالیس حال دور رو برش گریه می کنن جمع شده بودن سر از سرش کنن و رها کردن در گودی قطعه سرت به دست شم بدون به نیزه ها سپردشو به دست نیز دار تو ترا نگاه میکنن به دست نیز دار تو ترا نگاه میکنن من دوست داشتم که بمیرم خدا نخواست ملحق شوم به ماه منیرم خدا نخواست بالای نیزه رفته امیرم چه می شود من هم روم به نزد امیرم خدا نخاست نزدیک بود لحظه بوسه به هنجره این حاجت از خدایی بگیره خدا نقام به ابل محمود حتی آمد به ابل حتی بقلب زينب السبور و لسانه اللهم عجل وليك الفراج والآفية هو الناس عن جميع شيعته ومحبيه حيهم وميتهم سيمن وانظورين منهم بجاه محمد وآله الطاهرين All